بسم الله الرحمن الرحیم دوره مبانی فن نظام ساز جلسه دوم کلاس استاد مجید رجبی 889 این دیمان عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در جلسه یه خوزشته ما کلیاتی در مورد جایگاه فرق نظام سیاسی پیشینه ی نظام سیاسی و بیشگی های فرق نظام سیاسی ارس کردیم مسئله باقی مونده از بحث و فرق. اما من مخوام این جلسه رو افضاست دادم به مسئله نظام سیاسی و معنای نظام مرحوم سالالی دینی همونطوری در جلسه قبل که من تونه ازگاه دیم بر اساس آیات و روایاتی که در منابع ما بودید ما با یک دوگانه امام محمد و یک دوگانه حق و مواجه هستیم یعنی دوگانه واقعی که در شریعت ما اصلا تعریف دوگانه این دوگانه یعنی یعنی دو بخش دو تا دو عنصر هست به همین میزان ما در اصله نظام مسائل هم بر همین اساسیه در ارضی صلا و حالا این بحث دار مسئله جایگاه امام امه ما در فتن نظام سیاسی و رابطه مذهبی دینی سرزمین و, و جایگاه امام و جایگاه امه مشخص شد دو عنصری که مطرح میکرد عنصر اول عنصر یعنی ارکان حکومت اسلامی چیست الکان نظام سیاسی چیز دو روکنه برای نظام سیاسی اسلام برای همین مخواد که عرصه وجود دارد. انصر مشروعیت و انصر حالا برخواه تحبیر محبولیت می کنن برخواه تحبیر به قدرت انصر قدرت جایگاه مرجون بحث انصر قدرت هست و جایگاه امام هم عنصر مشروعیت قدرت یعنی چی قدرت یعنی اون تحقق حکومت اسلامی بر اساس قدرت در خاصه جامعه هست است قدرت در از مردم یعنی نظام سیاسی اسلام خاصه که در اثر اهل که میان امام و اممت و پیوند بلایی که میانه این دو شیطونی این قدرت رو برسمیت شناه که برای تشکیل حکومت اون قدرتی که برسمیت شناه قدرتی که یعنی به این نیست که شما تشکیل حکومت رو با زور با زور سرنیزه بیایید جا حکومت تشکیل نه تشکیل حکومت سیره احلامی حکومت تشکیل حکومت بر اساس قدرت برخواسته از اه... حکومت حالا این دو این دو رو می‌خوایم روی در حوزه در حوزه صحبت بکنیم و عباراتش رو بسنیم اینکه حکومت حق فرمانش رو از کجا میگیرد حق فرمان از طرف خداست. این الحق الا لله. خداوند هم حاکم است، هم خالق است و مالک است و بر همین اساس حکمرانی بزاد از آن خدای مدارد حکومت تکرینی و تشکیری جهان که از کلیم که حکومت داره تحقیق درونسان در قیبت امام در، با وسط پیامبران بوده و بعد امامان در قیبت امام هم نسب به صفات سیورت میگیره دونی ما یک نسب خاص داریم که نسب تعیینی هست یک وقت نسب عام داریم که نسب به استفاد به بیان دیگر قضایه گاه قضایه علانه و قضایه شخصیه هستن گاهی علانه و قضایه حقیقیه نسب عام از قبیل نسب علانه و قضایه حقیقیه است. یعنی گفته می شود آن کسی یه وقت گفته می شود که من کنتو مولا فعالیون مولا در جای دیگر هم گفته شده که حاکم کسی که باید قادل باشد باید آلمه به احکام باشد، باید چه باشد، اون تطبیق اون آدم رو من دارم میگم، امیرال برود. نمیشه نصد خواست. نصد آم، یعنی نصد استخواست. گفته میشود که امام شما کسید که مکانا من کنم من قبله کن و حدیث انا و نظر فی حلال انا و احکام انا و عرف احکام انا یا سایر روایاتی که مجار امون و یعنی علماء از الیاح از اومنها علاقه و حرامه و سایر استفاتی که برای حاکم در واقع روایات اومده ما مجموعه ای از روایات داریم که مخصوص استفات حاکم است فقط منحصد این بسیتان استفاتی پراغانی وجود داریم خب این نسل استفاتی الان است. نحن به قضیه حقیقی پس مشروعیت از ذات مقدس خدای متعار تا انبیاء و احلوگه نخوه ها داره این وقت هست که فقها جانشین نایب امام هستند یا خلیفه الله هستند. در واقع یکی از این نقدات ما وجود این امام فقیح فقیحی دوم شرایط نایب امام است. به حسب روایت هم می‌گند میگه که انهم حجت علیکم در طریق شریعت. فانهم علیکم و انا حجت الله من حجت خدا هستم اونها حجت من بر یعنی در کوبیه شریعت من حجت دارم خب این میشه میشوه نیابت از امام نخل خدا, خدا خب این بحث در اصلی مسئله حالا چه این مشروعیت ها نخل قضایی حقیقیه هست شما در قضایای حقیقیه برای تعیین موجود چه میکنید مثلا میگه که با ماه باید مجود یا با خاک باید تایم اون, اون خاک و ماه رو چمونه تشکیم دور به گاهی هم باید دورت خاص مراجعه کرد تشخیص قضیه حقیقیه مثلا میگه پس رو احلیت به به عرف خاص مراجعه کنید تا بگیر این احضی زکر بودو مارده توی در قرآن موضوعات مثلا باید به عرف آم به عرف خاص مراجعه کرد موضوعات مثلا بلانچه زرر دارد بلان مرید روزه برای او زرری هست یا نیست حالا نه به قدیه حقیقه دارید که روزه که زرری تشریق نشده است حرام است حالا زرر چیست باید به عرف در تشخیص حاکم هم که به نه در, در هست با داری سوال خاص باشه تا ببینید که این صفات در کدام یکی از این موجودین موجود دارد اینجا می شود اینجا به خاص همون نظر احمد برای تشکیصیدی برای تشخیص حاکم این یعنی برای چشم اینجا که می یاد خبرگان داره چشم میکنه یا انتخاب میکنه اون نزایی هست از اینجا. هست. میگن قبرگان کشف میکنن چه چیزی را اون منتی به الانه و قضیه حقیقیه رو کشف میکنن مثل اینکه میگن با خاش باید هم میکنین خاش چیز نظر غرد تعییل میکنن خاش چیز نظر غرد کاشف از این هم. از این همون خاشی هست که مثلا مورز نظر شاهر مقدس حالا ممکنه گاهی اوقات دیگه ما اعید تعییل کنند هم هست سموها گفه میشه اما کاشفه نظر غ کنند. از این که خطوش شد. در این جامعه همین نظر ورس خاص کشف می کند که آن که دیگه نصب خاص، نصب آن و سفاده او رفتی در, در خبرگان ما، مجلس خبرگان ما با همین منطق در قانون اساسی وجود دارید. پس خبرگان ما تأمین کننده کنسول مشروعیت نظام سیاسی ما. من بخون تطبیقم دمید بر زمانه بر محاصر داریم این شد اون طور اون طور بعد اون قدرت یا مقبولیت خب حکومت اسلامی برای این که تشکیل نیاز روشی دارد قدرت دارد. این قدرت از کجا نشکرد میدیرد این قدرت با اجتماع مردم نشد این, این اجتماع و این طبیل از بود وحدت کلمه وحدت کلمه آمل قدرت است. امروزه نظریه های قدرت در حوضه روزه هم به این سمت رفته به این سمت رفته که قدرت دیگه فقط قدرت سخت نظامی نیست ما قدرت استصالی قدرتی که ورسان تولید مخالص محبی را دسته. قدرت ایدئولوژی که اعتقادی دارید. قدرت قدرت قدرتی که از همه قدرت ها براسرین خاص به یک مدرد اتحاد و یک پیوند یک جامعه بلایی به ایمان هسته. اروپا که ورسان اتحادی اروپا می رهی همشه چیز به نشه. یکی یکی یکی اینجا دکنه ایمان. و خودی خودش رو خودی برای خودش تغییر کنه و برای سمون یکی برای خودش حکس کنه این از حمله با اوکرانیت داره به, به خودم احساس شد که به کل اروکا از اوکرانیت همین خود به اتراز دارن نشده دور رسمی اما خیلی برای سخت بود که این داره به تمام ترزمین ما از پولا داره خب این اموریتی به فقط به در واقع اهل باطل در واقع دارد دینیت اونها بر باطل خودشون مستحکمتر و متحدتر انتا شما در حق خودشون این, این قدرت دا هست اون طور قدرت اونطور قدرت مهمترین اسلام این دست کداشته برای منابش را نسمان کرد این قدرت قدرت برخواسته از امت اسلام انبیاء ما اهل بید ما دنبال این بودن که این قدرت رو تحقیل کنن و با این قدرت حکومت میشه پیامبر یرامی در از دورای درست سیزده سال در مکه انسان سازی کرد میشه در پای در سر راه خجاجی که در مکه یکی یکی این ها رو سوار میگرد نفر به نفر این ها رو میخواست داد اونتا آخر یکی از عدد نظراره خلاصا چی شد؟ یادت هر تای پر پر فرمانو که کسی تندوشوش کرده بود که توابی کرده بود مسئله ها که بعد به خودش فکر می کنم توابی درد دارم ببینم چی میگه این حق یی چرا ما ماغرضی کنم گوشونا تعلق نمی دن کنه همین وقت قربان می خونن جواب و, و خلاص همونجا میره و ایمان میاره بعد سال بعد 6 نفر میاره که پیمان عقبه اولش میگیره سال دوم 70 دو نفر رو میارم که پیمان عقبه دو هم شدید میگه و زمینه از مدینه به زمینه فرام هم میشه برای ایران پایانبر و مدینه بعد اشیر حکومت اسلامی و بعد ایرانی شهرها میشه پس از دیگری فرق میشه یعنی انسانسازی جامعه سازی تا برسیم به تشکیل دولت پایانبران در صورت نمیگه داشتن که مردم بیانی که ما رو بینید که خوبالایی چه بکنید؟ نه پس قدومان اونه که این قدرت رو کسب کنن حالاته این قدرت رو کسب شد بعد با اهل جنگی باید جنگی کن نمید اسمه رحمانی مجال پس تشکیل قدرت رو کومت بر اساس این قدرت بسته با این نوشه مهم نهیم این مردم سارا دید از این از دل این نظر ایگار بشنگاه که مردم انصور در وقت حکومت فعل جمعی مردم در ما سری سری اختیاری داریم سری واجباتی داریم که وظایف افراد یک سری واجباتی داریم که وظایف افراد نیستا سری که وظایف جمع وظایف غیبه به تنهایی که نمیدونه انجام بده غیرمجتمع حاکم امام به تنهایی که نمیدونه انجام بده یه جمعی باید انجام شده. این جمع این تکالیف رو چیه میدونن انجام میدونن افتای بدرت شدید خوب وزیده اولشون چیه؟ وزیده اولشون که تشکیر و حکومت داره. و بعد از تشکیر و حکومت وارد عرصه انجام دارید یه فهمانش دارن اینجا یکی از بقاها اطلاح کازم حایلی شایدان شهیست در حفظه الله ایشون در حوضه بدرت هم این نصفه میان که ببینید که گاه اوقات هست که من میدونم الان قدرت برای تشکیل حکومت ندارید اما میتوانم کاری کنم که از الان تقریبیت قدرت انجام باشد تا ست سال آینده این قدرت ایجاد شد برمان باجره که به همون از بار انجام وقتی حکومت نیست وظیفه ماست که برویم به سمت تشکیل یه آقا الان قدرت ندارید یه قدرت ندارید اما قدرت در کسی قدرت که دارید شرطیت قدرت شرط عقلی شرط شرطی که نیست قدرت شرط انجام تکالی اما شرط عقلی نه شرط شرطی اون استسواعت للحجم شرط شرطی که اما قدرت تو عنوان شرط انجام تکالیف میذاره، یه شرط عقلی. اون عقل چی میگه؟ عقل میگه تو اگر ضعیف بود، قادر... اگر قاذی، برو قاضی شو. اگر بگی نمیتونم قادر بشم، فیک. نمیپذیره. پس اونم یه قضیه اگر بگی که من الان عاجزم ولی میتونم یه کاری بکنم که قادر بشم، تو واجب است که قادر بشم، تکالیف مطلق. اگر بگید که من الان آجزم میتونم کاری بکنم که جامعه اسلامی در پنجه سال یا ست سال آینده قدرت پیدا بکنن. بازم باید باید. باید. بردار حضرت در نجف از اشون نرق می با دو قاسطت هم می که وقتی در حکومت اسلامی رو در سال 48 ایشون در نجف بلازم فقطی حکومت اسلامی شروع کردن ایشون به شایدانش رو که من سلام می گوستن وضعیت چطور می چون فهموند که معلوم نیست که به عمر ما برای سر برسد که حکومتی تشکیر باشد با ما در داریم این تلاش رو میکنیم و بیدم بودم در مبارزه بود تلاش رو میکنیم تا در آیه برای آیندگان این زنی رو فرامن بشه. مبارزه هیچ وقت از مبارزه نباید بگیشن که ها و مردم برای حشی حکومتی کتاب انسان دیست خنجاف ساله رو اگر اتالهی کرده باشید همونطور که الان گفتم که من تن کاری نمی‌کنم، من داره میگه. خیلیاً در تاریخ زندگی اهل بیت تجربه که تمام اهل بیت تلاش می‌کردند برای جامعه سازی و زمین سازی برای تشکیل رو. برای اینکه بتوانند در جلوی حضرت ها رو ببینن. به خاطر همین هم دشمنان میون نمای اونها می‌جنگیدن، اینها رو زندانی می‌کردن، اینها رو در واقع حبس می‌کردن، شهید می کردن اگر نگه که فقط یک خلاصه حدیثی بخونه و اخلاقی بکنه که کسی طوری باهاش نداره مبارزه میکرد حالون و رشید با خلیفه حباسی به لحاظ سرک سرزنی او به امام و کازم که خلیفتان یجوا با خراج یه دو تا خلیفه توی این دارن خراج میکرد یه یکی ای من این حکومت میکنی باره. این بوده که ما حالون با اون کیاست و دیرکش چرا باید همون قازم رو با این همون محبوبیت زندان؟ زندانی؟ وجود دیگه مدیریتش میکرد نمیده مبارزه میکرده تنها راه مبارزه با این ها حسابی زیگیشون وگر نه این ها از انواع و اقسام شیبه ها شبکت نازی شبکت نازی چقدر ما آنها نمید بحث قدرت مرگونی که داریم بگیم به شبکت خمسوزکات مردم رو دریافت میکرد و از دروت این گفتی باشد قضاوت و مردم شیعان مکلف بودن یا پیش اینها پیش قضاعت حکام... سلطان اجازه نداشتن مقبوله وانه نهنزله هم میگن نمیتونم سادر اختلافات تنازهات رو میاند روی رو وجوهاتشون رو میموندن برده بگی خب این حکومت بگیشی حکومت هم دولت در دولت داشتن با این سازمان و بکالت و شبکه سازی که انجام بودید همیشه در حال مبارزی بودن حالا سیات ممکنه تاکتیک مبارزاتیشون متفاوت باشه شد در دوره عوارد داردانسین تاکتیک مبارزاتی به یه شکل بود در دوره امام سجاد به شکل امام صادق به یه شکل امام کاظم برد شبیران که توی میگیم پس این هم است که قدرت یه یعنی هم شد پس قدرت قدرت چیه؟ قدرت برخواست از امت برای این قدرت رو با تحصیل کرد قدرت همینطور قدرش خاصل نخواه پس این نظام سیاسی و حکومت اسلامی همتی که گفتیم دوبانه امام اممت دو روکشی دارد عنصر مشروعی که الهیست و در امام تجلی پیدا می کند و عنصر قدرت که در اون مدت تجلی میدم. ولی این عنصر قدرت نوسان حکومت کمک نمیشه حالا این قدرت که میگی مزد اختریاد نیست. اون اطلاعیه هستی رو دموکراسی ندارد. ممکن ممکنه ممکن در زمانی موت موت هستی روشنی با اکثریت توی رو قبلش اینجوری نبوده تا ایستگاه که در آینده ممکنه است مزد دیگری بیاد که. همین این علوان از دموکراسی اختریاد در هیچ کدوم هست که شراعی جهان دموکراسی اکثریت نیست. اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات هست. که چیزی در حدود بهترین شرایط مثلا 20% میشه در بهتن شرایط 20% میشه. و بلکه کمتر. بین 10% در 20% جامعه. حالا این تطبیق رو هم دادم برقصی دموکراسی رو بر علیشون پیشتازا چه حقی دارن که بر 80 درصد دیگه قدجان کنند چرا باید بقیه زیر بارمون چرا در واقع و مجنون به چه حقی واسه حدا متصدیون و مجنون درآشته بر حیوانات به, بر به چه حقی اونا بر زمین به چه حقی بر آینده‌ها به چه حقی ولادت دارن بر اراضی به چه حقی ولادت اینها حتی بر خودمون انسان‌های بالایی که چیکار نکردن رو تغییر دادن اغلبیتاً هیچ تزوی زوورمون اکثریت بیشتر منطقه قدرت مساوی با زور منطقه ما دست حکومت اسلامی و حاکمیت الله به چی اینو دارم اینو والا تو کتاب یک از دوستا معرفی کنه کتاب تشنه نظام سیاسی عبدالقادر محسن عراقی بیرون شش جلد این کتاب تا موقع تا موقع منتشر شده 4 جلد تو بازار باشه یک یک تا ای اونجا ایشون در نقد این یعنی در جهان دینی علاقی اینو نفتر باید میکنه. که اگر شما خدا را کنار گذاشتید با این گدار همیشه مواجه خواهید شد که قدرت مطالی از با کی قدرت داره آن کسی که زور داره حالا این زور یه بخص با شمشیره یه بخص با سرمایه و سروزه یه بخص با سریبه یه بخص مثلا زور اکثریت داره زورش شده که اکثریت بهترین مدل زور رو زور اکثریت میرسه باز هم مشغولیت نمیده خودشنا معتقدن که دموکراسی بحران مشغولیت داره میگن ما بحران مشغولیت داریم بهترین مدلی که تو این وضعیت داریم اون میرسه یعنی شرط کمتری داره لیه. اگر نه مشغولیت داره نمیتونم این حق تاره. این شرط کمتر است که با این مدلی رو به میشه ال از علام سوالی هستند که این بس ما دو روشی داریم مشمولیت الهی و قدرت برقاسه الهند ببینید در قدری 173 نعجل بلا حضرت امیر به هر دو روش در این خطفه اشاره بکن فعمایتی ایوه الناس این احق الناس به ها در علی با این طور من شکیه این حق ناسه اونی که حق فرمان دارد با حاضر همین همره فرمان هم رو بکنی من به این حق و ناسه بینم اون کسی که حق فرمان دارد این روی نیاز به حق داره. �� مرکس روی اون دارد حق فرمان داشتن باشه ها کسی که حق فرمان دارد چیست؟ حق واهم علی، علیک توانا باشه فعلم هم به امرلاه آ... اعلم باشد داناتر آلمتر و, و قادرتر مدیر و مدفر قادرتر یه پرش یه جداره مشکلی هم باید کن مشکل چکر که حقه فرمان داره اعلم هم اقوار این کسی این نصر به از یه حقیقه بعد در, در این با اون سار گذرد شده میگرد لأمکانت الامامتو لا تنعقض حد تا تحضورها آمتون ناست تویه انگاه که امامت منعقد نمی شود من یکی اینجا آمه مردم حدود دید این اعباد امامت این تشکیه بود این امامت یکتا بوده حق بوده شان امامت درایت به امامت وجود بشه اما تحقق این امامت به حکومت که هست؟ حتی تحضرها عامت ناس این اقعاد یعنی عملی امامت عامت هم خب تک تک ملدون که نیست ملدون نیست قابل اعتناعی از جامعه که قدرس و محقق بکنن اینها خب اینها چکونه امام را انتخاب میکنن؟ نما بر اساس اصل قضیه حاکمیتی فرض می‌کنیم کلی که ما فقه در کشف قضیه حاکمیتی داریم که میان قراره هر خاص و شایع باشه اصل دهی نظام سیاسی اسلام شد این درود حق ما هم وقتی که می‌خوایم از در تحقق این یعنی واسه حکومت حق پیدا کنیم بر اساس این درود استمرار این حکومت هم بر اساس محافظت از این دروش در یعنی ما هم باید انصار مسئولیت رو حفظ بشکنیم و هم انصار قدرت برخصت از اون مصر اینکه اینقدر نقام ازام رقیدی در بست بکتمانسازی اموز بست جهاد تبیین رو من سترم این مصر تحقیق حکومت اسلامی منوط به این مردم بخواهند این حکومت اسلامی و خواست مردم منوط به تبیین است. هنون تبید قوزه ما سادیست هنون باری ما اول در قوزه هستیم که دوستان همه قوزه هستند دوسته؟ دوسته؟ باید مثلا از آقا داره که باید که قوزه باید انقلابی بماند یعنی انقلاب از قوزه سادر شده آنتیتز انقلاب رو هم همکان از قوزه در بیارند و در جاستین هم نمیتونه از دل نمیشه والاستقرار. خب البته هم تماشای زیادی داده این میگیره. که بگن آقا خوری بودونو نه خودمون رو به خطر انداخیم نه من خلاصه فوعشوری و نمی دونم تا طرفی که اینو یه ممبری گرفتیم موقع حضوراتی بود و یک درسی بود و یک تقریری بود. نهایتاً مثل فضاوات. خیلی نه. و اصلا شگونه. حالا بنده این سمت که کار کردیم یعنی تیوری میانید. یعنی شعن فقید این نیستی بیاد قیام به باید مسلح در مقابل ما هو باید مسلح بسلاح باشیم باید منابع حلی در خصوص دستمون باشد که بتوانیم کمک کنیم حداقلش در عمره های و بعد در مواجهه با عموم مردم هر که ساختریان خودش اون خصوصا قم و اهی قم الان به جای اینکه ما خانواده های خودتون رو هم نگهداری خیر اونها کردید هر کسی خانواده خودش رو نسبت به اسلام نسبت به این احکام نسبت به انقلاب نگهداره به هر حال شرایط امتحانات سختی کرد و قربلون و قربلون و بندل و حدال و غنی میه و ما خب محافظت برای هر دو از قدرت و حکومت را باید بر داریم ما بایی توجه که ما بایی اوقات در یک دوگانه برایم دوگانه قلق سرار میدن بیان که در نظام سیاسی، در رولم سیاسی این بطایی بیان که حکومت را دو شکله. حالا بعضی دوستان اینجا بین دو جلسی این سوال مطالح یا حکومت همه چیز ذات حاکمیته یا همه چیز ذات اگر همه چیز ذات حاکمیت باشه لیبرال اگر همه چیز ذات مردم باشه شما این مثلا کدوم چیزی یا این طرف رو دموکراسی در حقیقت خوب اگر نه میاد بر اساس در چی میشود؟ مردم و طاقه اگر مردم فرمان همون بودند، خودشون خودشون حکومو تعیین میکنن قوانین و خاصده ها و تمایراتشون بر اساس منافع شخصی منافع قدیلی منافع نژادی، منافع ملی نهایت و این اساسی منافعشون تعییم کن اما در نگاه شما کجوم است. آیا مردم هستن یا شخص اینجاست که یعنی دوگانه سالجایی این نواده در جواب ما میگیم بری از سقالات سآل رو باید یا سآلت پر از که باید دو, دو باانه شد. اصلا و از کنم که ما در نظام سیاسی اسلام در حقیقت دو تا نداری که یکی حاکم بردیگری یعنی باشن یعنی این حاکم از که باید ما اینجا حاکمیت خدایی متعال با و هر طبق این نظام مسئله سالت مسئله پردازی که در طب نفسی ما حاکمیت خدای متعال بود در این ها حاکمیت برای هر طبون از نظام سیاسی تخالیت و حقوق حقوقی مشخص که در سم حقوقی که فرد حالا کلن حالا هر و دیگری مشخص کرد. این حقوق شبونه مشخص این باید دو وزیف شامل کنه, کنه. در نتیجه عمل حرب وظیفه چی بجرد هست در حقوبه اینه هم، بعته و ها اینجا حاکمیت خدا, خدا خود هم در زنده حاکمیت شریعت و بر اساس شریعت کتون رو می به ما اینجور نیست یک گروه حاکم هست گروه محکوم هست این مثلا مسئله نیست این حالا مسئله که در اینجا مطرح نه غلبه رعیّت بر والی درسته که دموکراسی نه غلبه والی بر رعیت درستی درسته که دیکتاتوری شده مقابله نظام نظام سه‌ومیست نظام سیاسی اسلام نظام ستب... نظام سه‌م هیچ این دو تا نیست یک نظام یک حالت ثالثمی غیر از اون ها اینها در مورد جهان مسلط و اون نظامی بر پایه شریعت و احکام الهی کی خلا تذکراتی میره خدمت شما دوستان حالا این به من فقط به نقد دموکراسی چون بالغ از معلوم سال 1000 ما معلوم این است یک دو بانی داریم امام امت که مشروعیت از طرف امام و حضرت از طرف امام از این دوتا با که با هم برقرار میکنن نظام انجام جاورت مزهند بر این پایه چگار میکنن حرکت میکنن نظام اجتماعی این برشکش میگیرن نظام سیاسی نظامی هست که بر پایی مردم میان جمع میشن در زیاده امام یک ددایت تولی دارن با امام یک ددایت حربی دارن با هم دیگر المؤمنون و المومنات و از ظهوم او بیاه و بند این بلایت عرضیه این رو ها در جامعه این قدرت برخوای یعنی که مردم با همدیگه بلایت نداشته باشن در زید اون بلایت آگر این هم با در جامعه خطرانه ما با به اون سمتی برسیم که بلایت خودی و عرضی و جزیز بایت خودی این بلایت مردم با و مردم با مردم این بلایت هر دو روایت لازمهی یک جامعه گرایی هست زیرا این قدرت جامعه الفت و انسی که در این جامعه شکل گرفته میتونه جامعه رو پیش در طول تاریخ ما نمونه مشخصاً در اولی انقلاب فضا پیش از انقلاب آمریکا فضا بوده که شرط هم به شکلی و هم صد به شکلی دیگری با وجود همه چالش هایی که هست وجود داره برای اینکه این مسئله بیشتر یاد گرفته من میخوام بگم که در واقع نظام دموکراسی رو اش توجح این کلام میان مردم الهی توتایی دارن شده از انقلاب در این مقاله در کتاب فلسفه اسلامی مقاله ایشون در این کتاب دارن مقاله ولایت و دهامت در وجود حالات که با مبادیه واقع بینی در روش دموکراسی که میان ملل مشترک جهان است نگاه میکنید و کیفیت استنبات جهانی رو درستی می نماییم می بینیم که این روش اصطلاح راقی مترقی کاری که انجام داده این است که روی دلی نیچار کتایی نیست یعنی دیشتر طریقه دومخراسی دوباری یک کرد این است که روش تتمگرانه استبداد و بیبندباری عهد اساتیر را این پیش از افران است از حالت فردی بیرون کشیده و به شکل اجتماعی در آورده میجوی یک فرد بود یه ظلمی میکردان همچقدر و میستید یا ما ده نه خیلی تشکیل. تشکیلاتی و سازمانیاته داره این ظلمه اکثری منجامه ستمگری ها پرددری ها و خودسری‌هایی هایی که اسکندر ها و چنگیزها ها در گذشته با منطق زور می‌کردند فعلاً جامعه های نیرومند دموکراسی و متمدن جهان به طور دست جمعی در مورد ملت های ضعیف رو می اینکه این که گفته می شود یعنی دکتاتوری اکثریت با اون طرح نقودشون بر عبدیه این اکثریت دموکراسی یعنی دکتاتوری یک جمعی که خودشون رو اکثریت می در بر عبدیت. نه فقط در کشور خود از اینکه من سایی کشور از سایی رای آقا به کریم مدل نظام کیاسی همین است همه کشور های جهان هم باید به مدل دموکراسی در بیان یعنی میگهد آقا این وضع مطلوب منه این هم وضع موجود منه این وضع موجود شماست این وضع مطلوب ماست همه کنون از این وضع موجود حرکت کنید برسی کنون وضع مطلوبی رو تاریخ رو مطالعه کنید. یکی کتابی نمیشه شده کاریکاتوری هم هست. جناب مستطاب هم باید کاری روش تاریخ مستطاب تاریخ مستطاب هم دقیقاً دقیقا این کتاب به همین برگرده. مستند هم هست. حالا با حالت تند اینا اما مستند است که چگونه برای مگه به عراق همه نکردن برای دموکراسی رو اومدید به عرا و چگونه برای تحقیق مثلا دموکراسی جهاد اعتدایی می کردن یعنی حمله کردن برای اینکه این, این فرهنگ خودشون رو بدن. حالا تو خود در خود کشور خودشون هم زورت رو دارن انجام می دن حالا نروم الان آمد با این تفاوت که ها و سپنگری های گذشته از راه جهالت بی انجام می و در نتیجه هست انتقام رو زودتر بیداد می کرد و در واجون ساختن دستگاه بیدادگیری نقش قایلتری بازی می کرد ولی مظالم امروز با اصول فنی و روانی و در نهایت مهارت در نقافه احیاء حق و حقیقت و گسترش عدالت و بشردوستی و نوع پروری انجام شد این میشه پشت خشت دموکراسی این که به ما میگن آقا شما نظامتون دموکراسی یا دیکتاتوری ما میگیم دفتشون نظامت خاوتی ما نظام برپای نظام سیاسی اسلام داریم برپای, برپای احکام و برپای جمعیتی که رسولان و کتاب آسمانی را پذیرفتند خب این اساس میخوان چکار کنند؟ میخوان انتخاب واقاتی دولت بکنن، انتخاب تا حکومت ها بیان بهتری شیبینی هارو حکومت کنند. اینی قوانین الهی است. حاکمان هم کسانی هستند که عالمه به کتاب هستند و عادل هستند. اینها مردم اینها رو انتخاب میکنن و همکاری میکنن با اینها، در کنار اینها، خب با, با, با اینها لی اکومن ناتو به لحاظ اجتماعی به لحاظ اقتصادی این نیاز نیستیز نهی شاید مردم رو بازیچه دستشون بخواید ابزار منفعل استفاده ابزاری از مردم بخوایم بپردازیم اصلا حکومت آمده برای مردم هدف حکومت اسلامی لی اکومن ناتو به لحاظ اجتماعی هدف قایق حکومت مردمان خدمت مردم، خدمت فرهنگی، خدمت عقیدتی، خدمت اقتصادی، خدمت سیاسی، خدمت فرهنگی به مردم ولی فعل مردم هم هست، یعنی خود مردم هم هستند که این کار را انجام می‌دهند. مردمی که اون ولایت عرضی و فولی رو دارند یک اومن ناس، ناس یعنی چی؟ ناس یعنی جامعه مرکب از اومان اومد این در جای مختلف کنید تو یک دیگه عمر باید میگه اومر ساله عهده رو سری شورا؟ در حمایت که تل دالش هست در همین شریعت تو باید دعوت کنی خودوم شریعت شریعتی که بایی سیزده میگه که شر علک مندین ما و ساوه نو برای شما خدا دید تشریدتی یه قانون ها قانون زدگی قانون تمام در همه ساعت شر علک موسى مو و سابع نوح هستند و الذي اوحينا اليك و ايراهيم و موسى و عيسى ان تا دین رو و اختلاف هم نکنیم علی ما برای مشرکین خیلی سخت نیست که شما چه چیزی برای مشکل سخت اقامه اینه که برای مشکین سخت اونم اون دینی که قرآن اعودالله و بچهنه بود تاقود نه اون دین فردی که فقط بگه فرید نماز رو کنید شکریدی اون داستانی بود, بود که سفیر از امام در این که از خانمشه میگارند سفیر وزیر مستقمرات انگلستان در این کشورهای عربی میاد میگینه که میاد برای باز میگن صدای ازان کنند میشه از اینجا سؤال میگوسته که این صدای چیه؟ میگه این ازان نگارسته با کنگ با در دوید اینها اقامه میکنند و نماز اینا. میگه دره برای مدار یا نداره این سفیر سفیر سنگیر نه دره بیشتر از بیشتر اون دیم که کبار علم مشرکین اما تبو نیست سخت، سنگین، بزرگی بر مشک موسیقی داری که اول هم میشه مبارزه تنها را و هم هر سفیسکی شده. یعنی در زندان هم مبارزه داشته مبارزه می این میشه این دین یعنی دین اقوام شده دین حاضر در سحن دین دقیقیت جامعه دین مبارزه دین اشتنه و تابوت دین اطاعت زنی خدا بعد آیه تونزده یک پرزارکت هده بود به این دین دابل کن و سقیم کما امرت مسیح رو محکم و مقاوم ادامه بده همونطور که امر شده این و قول آمن تو به معنزل الله من کتاب و امرت لعب لبی نکن بلکه من ایمان دارم به همین کتابی که نازل شده است و مأمورم به ادالته برخورد بکنم خب از این راه پیامبر مأمور است رو برخورد بکنم از این طرف هم مردم باید تمامو به استدلال بکنن مردم يقوم الناس في الخير خب این ترکیب با هم تمام است این مردم در پای اطاعت از رسول رسول آمده امری علو کنه تنهایی میتوانن نه میتونن تنها کنه تابون اینه چیه حکومت دوای حامیات که در پایه پس این روز رو دقت بکنید مردم چرا به جای واضی مقبولیت واضی قدرت کار کارنده‌ای اینجا چون مردم قابل نیستن فقط که قبول کنیم مردم قبول کنی. مردم من حاكمم قبول کنیم نه این تصویر قشنگیه درست درستان درست مردم با علم حکومت اسلام قدرت از مردم است به رضا بایجه قدرت و به جای بایجه مخبولیت میدوند. میگیم هر کهان تشکیف حکومت یک مشغولیت از تو قدرت است. این رضا در کنار هم میتواند که هم بایجه خواننده حکومت اسلامی باشه. بعد، من اون علامه یک بیانیم دارم با ذر ادامه، باید بکرامشون شارع کنم. می چون میگن که هر وقت یکی از پرددری های این مورد نظام استعمالی دریده شد مظالم پس پرده برای همه آفتابی می شود و با تبدیل اسمی به اسمی مانند به و اشتراک منافع و کناکی به راهبت و رقعانه و ندیر اینها به همان چیبه ی ظالمانه ادامه داده می شود و هنوز مناظر و تنگیز عهد استعمال از هر کش و کنار کشورهای خاضری بشه در اقلی نتیجه جرایان جهانی روش دموکراسی را میتوان در چند جمله خلاصه گرد. جهان را به دو دسته مختلف دره. که جهان را به دو دسته مختلف تخلید. یک دسته ملل معظمه که پیشروان روان و مالک رو رقاب بقیه ملل جهان بودن در جان و مال و عرض دیگران فعال مایشاق هستند و دسته دیگر ملل دموکراسی عقب مانده که غالباً بردگان مارکدار افرادی قرار گرفتن که ننگیدترین مراسم به را در قیافه دموکراسی و در لباس قوانین دنیا پسند و آزادی بخش به طور درخواه انجام میده عملاً امنا همین دموقراسی میشه ولی یه چند قدرت قدرت برکر جهان هستند و دیگه دیگه اشکرهای مثلاً دموکراسی که کاملاً پیروب اون قدرت های هستند این میشه این حاکنیت برای جهان رو دارن باید سندومتراسی ایجاده این روشی که حقیقت اقویتش این است و مهمتر مهمترین به خطور و خصوصا مخصوصا با مراحضه اینکه مهمترین روش انسانیت رو که معمولیات هست و امانه این که زامن اجرانه دارد کلی از اینان برد من باید من باید رهبرینم کلاماتی از اینشون من بیارم در موسیقی دموکراسی که بدانیم کانچی در مردم سالالی دیدی که ما در انقلاق هیچ ایچ غربی دموکراسی ندارد فماید که از غرب نمیخواستیم و نمیتوانستیم از دو بگیرین از داخت نظام سیاسیم چون غرب چیزهایی داشت اما به قیمت نداشتن چیزهای مهمتر. در غرب علم بود اخلاق نبود ثروت بود ادالت نبود فنناوری و کشرفته بود اما همراه بود با تخریب طبیعت و قصارت انسان به بحانه هومانیست انسان رو اثیر طبیعت کرد اثیر خودش کردن بود که قعدا عباد و بیش نقصی کلتی بین جنبه هومانیست انسان رو اثیر خواه و حوث و مرسانیه خودش نیدوشن رهابشه انسان اسم دموکراسی و مردم سالاری بود اما در حقیقت ترمونی سالاری بود نماینده هستم امروز هم است. این مبلدی که از میگم ادعای من نیست من از قول مسلمانان نقل کنم. از قول خود تاریخ ها نقل میکنم امروز روزهای اشرافی قدیم بود در خود امریکا آن چیزی که به نام دموکراسی و انتخابات وجود دارد صورت انتخابات است بالاتر آن چیز حاکمیت سرمایه من مایه نیستم که از میسن اینا کلاواشن کسی داره ضمانت که اگر کسی نگاه کند خواهد چیزی که در اونجا انتخابات شهرداری ها انتخابات نمایندگی مجلس انتخابات ریاست جمهوری ها آن چیزی که نیست تقریبا رعی مردم یعنی مردم تقریبا هیچ نقشی ندارد و آنچه که حرف اول و آخر را می پول و سرمایه‌داری و شیوه های تقریباتی مدرن و همراه با خرید و جذاب از نظر آهاد مردم از نظر آهاد مردم سکی نگرد اسم دموکراسی هست اما باطن نیست. هم بیانات آمازان رحبری هست خطباهای نواز جمعی 22-79 نو بعدیشون های مختلف رفتان زمین رو بیان می کنند که ازامه همین خطباهای بنابراین که آره ای و مردون سالاری با هم جمع می شوند اینجا تنها این می تناقض نیان دین بلکه یا که نه بلکه اتفاقا ضامن حفظ حقوق مردم تنها زمانت واقعی که برای حفظ حقوق مردم وجود داره چیست در مر... واقع بلایت اسلامی آنسان سکت سکت که بلایت دوری عرضی به این شکل کردن نه بر نحبره، نه دولت سالار سوسیالیس ها دولت سالار هست لیبراله ها مردم سالار هست مثلا، باید سرمایه سالار ما در نظام مردم سالار دینیمون در واقع دین رو مردم سالار دینی دینی که توسط مردم حدیر شده است این نحبر و سالاره بکنانی برانه ببینید ما نمونه هایی رو از, از جایدان مردم در قدرت سیاسی را اینکو میتونیم به وقت آید دوران در میشاره کنیم در مواجهه با جریان های سیاسی باطب مثل مناقبین مثل محاربین مثل خلقین اینجا روش برورد حکومت اسلامی با اینها چگونه باشد؟ در بروران یعنی چند نمونه دادیم یه جلین هست در تاریخ جنگ ها در, در قضابات پیامبر بر نفر از مسلمی تخلیف می کنند و علاقه خلاس قلدین بوده و با دشمن با یهود دارن همکاری می یکی از فرمه هایی که با یهودیان و راستی اطلاعات می دهد که می این آیه شریفه نازل میشه شود و علاقه خلاس قلدین خوش چیه؟ خوش محکومتی پیان بر اینها باید در بایکوت اجتماعی قرار بید یعنی حتی خانواده‌هاشون را یه قطع ارتباط و علاق طرف به قلده اذا ضاقت عليهم الارض زمین برایشون تنگ ضاقت جانشون به تنگ اومد الله به چرا دوباره گردم بخاطر این فشار اجتماعیه که میشه قدرت سیاسی که ما مالک اون هستیم دیگه از میگن دولت مردمی سازی نظام اسلامی به همینشه تاکید دا کردن جامعه ها آ ایام 22 بهمن جشن ها مردمی باشه نه از های در دیوار تراشونی کنید در دیوار خصوصی باشه مردمی یعنی از دل مردم های مردمی داره میاد چرا قدرت سیاسی که ما به میشیم قدرت مردمیه قدرت برخواسته از امت بایید با اگر مردم همراه رو کنند باشن کسی نمیتونه دیده خلال کنه منافقین در چه قرار میگیرن؟ در تنگنای اجتماعی قرار میگیرن در تنگنای اجتماعی قرار یک مبارزه منفیه میشه مبارزه منفی سیاسی یک ای کنشگاهی سیاسی یک کنشگاهی سیاسی, سیاسی منفی یک که وضایی دیگه مردم دارن چیه؟ اینه که محارزه منطقی بکنن با جریانه های سیاسی باسه هم روی معلوم و نحیح از منکر سیاسی همینه ما به سکر دوباری اگر حالا فرسونیم مردم این سنفر رو شوار میگردن که حقی میگردن که شما میروسن می حالا تو بسید که شما رو باید سنفری برای خرید شما نباید به دشار بیرد تو الوسیه هاشون در وقتشون میگردن سران قسمه میرف حکم سیاسی انجام نمیشه. شد اونها مسیر خود توی ازاده تا ما بید شهروندیم فعال سیاسی هست این کار خودمونم انجام میدیم. مردم هم ها راه داشت سیاست رو با دیانت خاطی نمی کنند این طرف ببینید تعامل مردم که مردم نیشید و بخواهن چقدر راحت تر می مطالبه عمومی مطالبه گری یعنی باید گفتمان سازی بشه بصمان سازی مطالبه ایجاد میکنه مطالبه حق، یه هدف تو همین مسیجی ما جهاد رو برای چی میخوایی؟ برای اینکه مراقبت برای از آن مشروع... اون قدرت در نظام سیاسی است. این قدرت برادر حکومت هم در واقع خودش رو بسیار سردرگمی میکنه، نخواهد کرد. اجازه به حدی مرا اینکه باشی هست. چه محصول دیدان این ای بار همه مائم ها و اونا دو بودش نا در باز در این آیه میکنم که سری توبه بود آیه سد و نیشده. باز در همین سور که مرکه توبه خیلی بینیم این قدرت معلومی رو مردمی سازی رو شما در سوری توبه خیلی بود تو در باز آیه نوید و ما در مورد نیشه از تخالیفی که ما در مورد روی گردانی از منافقه میشه از تخایی منافق یعنی چی؟ منافق یعنی یک جریان استفاده در جریان سیاسی هست که حاکمیت رو به حصل ظاهر پذیر قانون اساسی رو پذیر اما تلاش میکنه که حکومت به احدافش نرسیه یعنی مدان برخلاف سیاست های چلان حکومتی برخورد میکنه در دوره پیانبان این مدار رو نباشیه حتی در آیه حشکل چار که بلا تو سل علا احد منهم همات عبدا بلا تو کم علا مجلس ختم اینا هم نورده نمازمعیت هم به این مگر در روایت نداریم که امران رسول الله ان نلغی احل المعاصی رو وجود مجفهت رهد های مردم ما هم که با معصیت با بجه عبوس و فریز و تلخ رو برد بای معصیت بایی معصیت فردی گاهی محصیت محصیت سیاسی اجتماعی هست که این محصیت کلامی صدود کرد محصیت سیاسی تسیار بودتر از محصیت فردیه ما در نظام عربشیمون عزیزان در نظام ارزشیمون باید مشخص در درجه بندی مواسی مشخص باشه گناه سیاسی گناه اجتماعی به خصوص گناهی که مدت داره اینها خیلی خود هیچ نذار بیشتره یه بار می‌فهمید از حالا نصوص هم داریم در داری زمین. این زمینه ما هم امروز بحث از این ما که توی درجه بندیه خدا نکنه که ما مسئول کنیم اگر مسئول می‌شینید مسئولیت اجتماعی داشته باشیم که افرادی رو درگیرش گیره کنه خدا نکنه اگر مسئول نشه می‌کنید مسئولی بکنیم که زماندار باشه مدتدار باشه ببینید من مثال می‌ذارم مثلا 88 این محصیت که ادبه یادی رو درگیل می کنه و ادامه داره یعنی گسرهایی رو در جامعه ایجاد می کنید یا گسرهایی رو ایجاد می در جامعه که اینها قرار قرار قرار تلیم نمی شد این محصیتی رو باید و بود بعد چی میشه که به این محصیتهای بزرگ میرسیم؟ باز خواست کنم واره که بخصوره واره که آله می ران تمایید که دلیانه رو به کردن. که به شکست شدن در جنگ بود در مورد اونها این آیه شد بگید اِنَّ الَّدِينَ تَقَلَّو مِنْكُمْ يَوْمَنْ تَقَلِ جَمْعَانِ اِنَّمَسْتَ شیطان به بعض یه گناه اجتماعی شدن اینکه شهید جامعه اسلامی بلا خلا با این شکستی رو برو وقت در کردن در کسند ما قروبی روز بشیم جا نگست کردیم حالا تجاری که هم بود اجران درستان ولی با اون موسیقتا حمزه سیدار رو اونجا از دست چرا چنین گناه بزرگی اجتماعی رو انجام دادن در اثر هوا حب و حبست حب این لمث تزد و لعب شیطان قبلا اینجا از کرده یک زمینه سازی چرک رو به واسقی اعمال ها رو شیطان دوری روایت که مثلا خاصونی که چون گناه می شود که انسان در گناهان دیگری بنابراین نتیجه داره و گناه من منو خنجه ولی ما میگم گناهان اجتماعی گناهان بزرگی، حتما البته گناهان عادی نمی‌تونه نشون خب ما با اهل معاصی باید با وجوه مکفره مواجه بشیم با اهل معصیت‌های سیاسی نه باید با وجوه مکفره مواجه بشیم من اون آیه اونم رباید این هم در تحریق الوسیله در بال امروی معروف شد تحریق الوسیله جلده یک سفیه 483 حافظیم در جامعه در اینجا از هم در بالا امروی معروف چند تا کوچمه همینجون وزرح میکنن می کنم اینکه اگر دیدید که حاکم اسلامی و که که کارگذارنی در دولت اسلامی دارن یک سری معاملات سیاسی و تجاری اندار که به ضرر جامعه اسلامی باشه و خوب استیلا دیگران استیلای سیاسی استیلای اقتصادی استعمال معنوی یا فیزیکی در جامعه اسلامی باشه بر همه مسلمین واجب است که این مرابده مرابدات رو تر کنند و اگر مسئولین نالایلی بودن نمیتونند مقارمت ایجاد کنند باید مقارمت تلبی کنند این فتای بکو از همین ناشونی شما یعنی دارن یک قرارداد رویی قرارداد, قرارداد استعماری است که استعمار مدرن هست استعمار مدرن یعنی, چی؟ یعنی استعمار لشکرکشی نمی میکنه با اون کشور میاز یک کاری میکنه که خود به خود با اون کشور یعنی کسانی رو اون جا سر کار میاره که در اتحایت بود میشن قرارداد هم بکنی اتباقه انشان این نتیجه این میشد که در واقع دولت ایران دولت قاجار در اطاعت انگلیس‌ها چون های حیاتی تنباکو که بسیار برای مردم آن زمان ضروری بوده در که کی قرار داشت دولت انگلیس. تمام دهقانان تنباکو باید کلی کارگزار وارد شهرهای مختلف می‌کردند. برای حفاظت از این کارگزاران باید نیروی نظامی وارد می‌کردند که در تاریخ استعمار هند شکل یکطور بود. یعنی اول استعمار اقتصادی شدن، رفتن، چه کاربردی نداشتند. چی میگن؟ مستعمر برده برای نوازداز مستشان ها نیروی نظامی بودن. بعد این نیروها بیشه شد بیشه شد. بیشه شد. این فتوای فتوای که همون حکم. حکم حکومتی مربون نوزهش رو از درازه تماکو. بساطه همه اینها رو جمع زن. از همین فتوای اگر مردم همراهی نمی کردن. می استفاده می کردن. که دوار که در, در حرمسرهای خود ناصق. هم در فیلمی هایشون رو برای ما شکرستم دوستم نیست که ما حلال کلده رو برای ما حرام دیم این یه همچین فضای فضای یعنی قللی فضای این اطفاق رو انجام دارم قللی فضا این اطفاق رو و این یک وزیفه ی جامعه هست این یک وزیفه ی فرد به هیچ کاری نیدونه آقا من به تنهایی استفاده نموشه دارم باید حتما یک مقداری از جامعه این مرافی مقاملت همتی رو انجام بزن که متنابض کشید نحی هرمون کرد، دست ممکن انجام بگیره. باز مرموم شیخ انسایی در مقاسب محرمه در باب ری او الانب نمی اعمل او دوستانی که اون بحث رو دیدن اونجا مرموم شیخ مقاملت آیا من میتوانم انگور را به کتی بکنیشم که میگونم این انگور را بخواهد تبدیل به چی بکنه به شراب میتوانم برای میکنم انجام بدن میگه کنم من اگه نخوشم همسای بغلی نخوشم چون میگه وقتی این منکرتر خواهد شد که همه اون بیس نفری که مثلا به شهر انگور روش به این آقا انگور نخوشم یا احتمال بدم که این بیش نکردنی اگر می که ودالان ده نفرشون نسبت که یک اینجا ایجوب من نصف کردن من لذت از من در ایجوب قله دارند دنبال چی بگم مثال چی میزنم؟ مثال حمله سعی میبافم این سنگ سنگی ایجوب است. دیست آدم نیاز دارید تا این سنگو حرکت دهیم. پنج نفر جان داشتند. این پنج نفر آقای وظیفه دارن هیچ جا ما بیو پولمونو بدین که اتصال عمل کرده باشه آقای میخدن عادیه چون پنجمشم دیگه نمیجنسه دیگه پول نداره و دیگه نه 20 نفر لازم داریم 20 سال نه خان نه خان نمیخواد دیگه باید همینجا هم تمام تا بعضی تخالی شما به صورت استخراجی و نه تخالی به صورت معنییه این مکلف تکلیفی که استقراهن از تکسک افراد شده اما این تکلیف تکلیفی که از تکسک خواسته نه شده. از خواسته شده تکلیف اینه که این مجموعه رو شکل بدن برم بیست آدم جمع کنم کس کنم بیگه کس هم رازه خب این مقاومت منطقی هم همین من باید در مقاومتی جهاز تبییر زیر همین جا هم. کنم. قدرت یعنی رسوا کنم رسوا کنم منافقین رو بسخواهان رو قربگره ها رو که میخوان جامعه اسلامی رو به سمت قربی شدن قربی شدن در همون فرمایه جرده علامه دوتا دو دو دو دو. یعنی امروز استعمار قرب استعمار ساختاری از منگاه یهوقات هرانتس ها باز میشه علاقیزم چون همین که دو جلسه بیشتر شما اثمار میبینیم فنی که در اول باز میخواد مفهوم ساختاری تسلیه داشت امروز استعمار قلب استعمار ساختاری استعمار ساختاری یعنی چی یعنی با افپی با بیستی با کمپانی های بنادری میخواد استعمار دید. این فرمان حضرت امام که اگر قرار دادی میبینه استعماری باید جلوش واستی مقاومت ایجابی یا مقاومت منفی انجام بده مقاومت ایجابی یعنی برید اینورا عوض کنید این تلاش کنید این کارگزاران رو رتبا کنید الان چیم کنید مقاومت منفی یعنی تلاش های سلطی مثلا خیلی بکروش نمید خطه ارتباط کنید با اینها این کاری کنید که این کار شما شکرد ماشید بشه ماهات منفی بشه این قرارداز ها چیه استعمال داره واسه این بردود تمام زورگویهاش دیگه لازم نه لشکر بپرستن نه آدم بپرستن آدمشون رو بیان کنن فقط این کاری میکنن طرز فکر این استعمار فرانو هست شما استعمار سه مرتبه داشت استعمار پوهن استعمار, پوهن، استعمار لشکرکشی استعمار نو استعماری بوده که کارگزارانی رو اونجا میگذاشن که باسته بودن مثل پهدرین استعمار فرانو استعماری هست که کسانی رو به سر کار می آورن. که مطابق فکر اونها اما طابق اندیشه اونها رفتار کنند اینکه که فهمودن در دستگاه های تصمیم سازی و تصمیم این برای اسلامی این که دعوت کنند یک در بازی بذارند تا نخبان یک گره اسلامی رو جلب کنند پرورش بدن، تا بعد زفت کنند حالا دارید اینجا و رساس اون چیلی ما میخواییم مکملانی کنند این میشه استعمال فروه که در دوره اعلان استمار جدید ما با این استعمار موجود. که میاند ازام و وای استمار ساختاری می باشه همین الزام میذارم یا باید بوده مثلا فرنجا بشید تا به توانید تو شما رابطه برقرار ماین بعد از اونجوری میگی لوازمی دارن که مدام باید از اینها دست اینو این هم همش در چارچو اون احزاب ملی روشنا یعنی اونها یک آرمانی دارن آرمانشون مثلا نه لیبرالیسم برای و آلمان آرمان تو نظریه هاشونه که دارم میگم تحلیلات نظریه پاردو چون نظر... نظریه سیاسی لیبرالیسم رو گفته نظریه امنیتی. نظریه لیبرالیسم میگن گام اول اینه که ترویج و تطبیق بده گام دوم عنصر الهام بخشیه یعنی خیلی موج بده حالا با باهونات و رسانه‌های کاریش می‌کنه گام سوم عنصر تحریمه تحریم می‌کنه واقع اگر مراوس اگر میخواهید مراوس نشواد این کارو بکنید در همین حالات آمده بود حدود سال پیش پاکستان جمهوری اسلامی پاکستان هم در واقع قوانینش اسلامی و مایسش هم مایس مایس بر اساس اسلامی عمل می حالا مردم می کنم نظریه داره ابو نظریه خلافت دموکراتیک همین شبیه به همین مردم صاحبی دینی وزید خب، که از جهات خب مالا شهایی از این محصول بودن که آقا ما دو سال هست که قانون قصاص در پاکستان اجرا نمیشه این حوش تازه میشه ولی اجرا نمیشه چرا شما اصحادی اروپا بهشون بفته اگر میخوایید مراوزات مالی ما با شما ادام داشته باشد نباید این قصاص دست دفعه که اون نباید این رو در قالب تحریم اقتصادی ها میادی و بعد دشگرگیشی اونطور بردی که اون هم دارد به عراق در که هم در شدید کردن این کاملا در اون مرحله گذاری هست برای رسیدن و موجود شد و از اون ما شد ما خیلی باید در این زمین و این هست که مسئله تحقیل دولت اسلامی و رساس از بیشتر محقق می‌کنه. من یه دیگر رو هم حرض بکنم دیگه یه رو به پایان برسنم و اون مسئله تشکیلات سیاسی ببین مردم سالاله دینی قدرت سیاسی از مردم یک وقت قدرت عمومیه یعنی قدرت چودهی چوده مردم در راقی مادر ها، در انتخابات ها در همین مبارزات منسی و مصبت با متخلفان طوله. یه وقتی ما تشکیلات سیاسی آیا قردار مثل یه هزت اقومه سیاسی, سیاسی آیا ما در رید نظام امام اممت چیزی به نام تشکیلات سیاسی و هزت داریم یا نداریم اینا هم یه بسیار مواند بعد تو میگن آقا برایت فضل چه نیاز به حس چه به تشکیلات داریم, بس داریم. ها مثل مغمون شاید فشتی ها به ضرورت وجود تشکیلات میان برای ما ضروری هست این بعض هست که شاید در دهه اول انطلاق مطرح بوده بعدش جورایی حده این موزدنه تشکیلات سیاس و حیل مجرب تطرقه میشه مجرب اختلاف میشه ما نباید بارد به اون بحث میشه ما همه رو بردیده به لاحظه هم انجام میده این دواقه پر بنامیستیم اما قد نموشه اینجا پاسه خونده میگه اولا اگر از طرف مؤمنی انقلابی ها تشکیلات سیاسی بروس نشه از طرف دیگر جریان های اجتماعی اونه تشکیلات خودشون رو داره تشکیلات دارن برنامه دارن از طرف اونها ها دارد اونا وقت تشکیلات داشتن خیلی راحت میتونن مسادر مختلف حکومتی رو چهار کنن؟ دست کن ما روز چارشی که در دولت جدید داریم به خصوص در همین دولت که این بحث بکنم این در آشی ارزی کنم اینه که کمبود نیروی کارانت قرار وزیر و بومان وزیر هست بومان نوانده نیروی یکی بود تشویقی دستور بودش مرحله رو یکی که تهی کرده باشه یک جفت از مصداق دانشگاه و از هم فضای دانشگاه و فضای تشویقی یک دفعه نیاز ندارد تا یه شرایط مرحله رو تهی کرده بودش این در کجا شکل میگیره این کار بیچاره یه هدف تشکیلات ما وقتی نظام انتخاباتی باشیم حکومت اسلامی که نمیتونی بیاد خودش کارو اداره ترجیح میگی ولی یا خودش باید بیاید انجام دادی نظر دادنیه کافی اونایی که مکزین اسم ما میازه به تشکیلات اگر تشکیلات سیاسی نداشته باشیم حض نداشته چی میشه با دیگران من کار اگر حض نداشته باشیم باند میاد جای حض رو میگیره و باند خیلی از حض خسرمانشتره این رو منوشه که باند از حض یعنی شما حض تشکیمه میتید از افتحاد میانه سر کار سر کار تو اومده اونجا شروع میشه به یک باند قانون داره زبابه داره همه چیز مشخصه اما بان تشکیز مانونی سرش کجا داره کجاست؟ کجا ده. رئیس این بان کیه نمیدونم از کجا داره فرما بگه این چون در وضع موجود در وقت مصروف شما قاییه چالش نوجه این چالش رو بخواین برطرف بکنیم راهش بینه که مثلا شما تشکیلات سیاسی داشتیم اگر تشکیلات سیاسی داشتی مردم سالاری هم ه دقیقاً چه روقاعد شد یعنی الان معدوم سالاری دیدی در کشور ما منحصر شده در چی در اصل تئوری که مردم فقط بیان تو انتخابات رای بدن اون یه راهنمای انتخابات در حالی که این می‌خواستن عرض کردن در آیاذ و روایات و خطبا و تلقوهی حتی اصماون رای‌گیری اونها و شریعت ما بیش از اینهاست تلقوه این هست که قدرت از ناحیه مردم باشه خب اگر قدرت از معمول معلوم شد ما نیاز به تشکیلات داریم که مردم بیان تقابلیت جنگیشون رو تقابل این تشکیلات هنجمون دستی که از این تشکیلات ما گیرم نمیکنم یا مو دستی که ازش کمراه گشته دستی که از این تشکیلات میکه تشکیلات عالجشمندی که بود نه جهاد سازندگیه که از این تشکیلات عالجشمند خب این تشکیلات سیاسی بومی از دل معارف و نگاه های از سیر اسلامی حضرت امام نظامسازی کردن خیلی در خیلی تر جهاد جهاز سازندگی نظام سازی بود که امام در عرصه خدمت جهادی و نجوم. یه نظام درستی که مردم در جهای مختلف بتونن خدمت رسانی کنن به, به مناسب مرد یه نظام یه ساختاری ایجاد شد یه اون ساختار نتیجه شد ساختار شورای نگه رو ایجاد کردید برای حفاظت بر قانون. ساختار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یه ساختار ارتش مدر نیست ارتش ایدئولوژی که ارتش ها در جهان ارتش های مدر ناست ارتش های, ارتش های ساختار کاملا سکولار سپاه پاسدارانی که یک ارتش یک نیروی نظامی ایدئولوژیکه، که مختص جمهوری اسلامی است. هست نهی داره ارتقای های کار بیجاری داره بیشتر میشه خب این یک ساختار صافتار سازی. ما جهاد سازندگی ارزشات کرده اه و من تو یک مقایسه بکنید اینو میخوام بگم چون واسه نظام سازی ها میخواین مثال داشته باشید مقایسه بکنید ساختارهای در آمده از تاریخ اسلام ایرانی رو با ساختارهای غربی من همین جهاد سازندگی رو واسه مثال جهاد سازندگی رو با وزارت جهاد کشاورزی محارس کنیم ما تو برسته های تجونش های علمی که داشتیم در واقع باقید این جهاد سازندگی وقتی ادوان شد در وزارت جهادگی شاوردی مثلا وزارت یکی ازاختار رو باردازیم خوشن میزنشینی و ساختار گروکراتی و ساختار رو جهاد سازندگی یک ساختار جهادی نظام و اصلا نیاز نیست منم ببینید بی‌دیدی، تمام ایمان مرتضی شیری رو بی‌دیدی، بعد بازوهای جهانستانی رو بی‌دیدی. اما ثابت شد لذا جهان اجازه میده که اینها باید به هم کوتاه شوند بازوهای ناظر به جهانی جوشن جهاز انجام میدن. راستی تو ما ما رو برای میزانی که داشتیم تو آیام تغییر این دایره مردم تنظیر میان، ای باقیمون دوری جهاد بوده. نیروی هر کی منو داره سر ما خسارت چه نیازی دارید چه گمونودی بودی داری؟ از مرحله محروم چی الان بگو بعد بریم کجا از دست سردارش بگیری که آیا بشه و داور ببینید که اصلا مشکل موظفان پیشا نمیاد اینا من میگم خیلی چیزی که دارم. می گویید دارید اوکی اتفاقا منطق با اون یعنی علالقائده واسه خوبی واسهی علالقائده دارید ولی واسه میگانی دارید واسه علالقائده میونه نشو میتونه تو واسه میگانی و امروز این رو لیکی من دیروز رو دیروز دیروز از طرف نمائنده مقام از اون را دقیقی در بزاره با ما ارداری گفتی که آقا از آقا میخوان دوباره جهاز رو احیا بکنن میخوانی در این زمینه از شما یک کاری کرده میخوانی کمک میگیرم که این کار نمائنده لگه بقیه دستوره دستوری که آقا بشونده یعنی ک سال نه در دولت اصلاحات هست که لایههی تقنیم میدست که جهاد سازمان جهادی شده جهاد سازندگی با بزرگز ادغام اتغام بشود بمانه که من میشونی که آقا هم کارشون هم داده از اقوی یه به آنها و ادغام. که اون جهاد هم ادغام شد جهاد نشد. در واقع حل شد. بلیدار جهازی جهازی ساختار بروشتی که, که انسان های رو هم آدوده نمید تأثیر این ساختار و کارگزار تأثیر طرفیه نمیدوند بلکه کارگزار هستن که ساختارو نقیم میدن ساختارو تابع بودشون میکنن اما خیلی از انسان های عادی هستن که انسان جهادیار جهازگیر و مومن و متدین و انقلابی و بلیداری ساختار رو ساختار و کاربزاری تعامل طرف اینی با همتار از داریم و نظام ما این فقه سیاسی رو باید بیان تبدیلش بکنیم به نظام اینی نظام دو تا یک نظام رو نعرفتی داریم که از کلیم نظام امام امت و ضایب و بقوع یک نظام اینی داریم که مثلا میشه قانون اساسی ما ساختارهای قانونی ما و مثلا شورای نگهبان مجمعی تشکت مفتح مزارت کلام ما باید فرق نظام سیاسی رو کامل بکنید. دوام اولی، درام بعد باید در مورد اصل نظام‌سازی بشه، ساختارسازی بشه. این اون نظام‌سازی با این فتن نظام فرما یعنی اون نظام معرفتی ذهنی، نظام درون هینی و خارجی. در هر جالسه بُعدهای هینی و خارجی داره. حالا دوستان، این ای را هم بگم، ما اینجا مطرح کردند خصوصی ایران فلاتون هست. پس ما اول چه باید بدار مقارن بدی انجام بدیم؟ آخرش دقیقا و این کارا انجام بدیم. عرض کردیم که ما الان فقط دانش در این زمینه من مثال زدم برای که ببینید نظریه‌ای که در حوزه امنیت ژستفالژی بزار آمریکا هست یک نظریه است اما ده ها نظریه امنیتی و سیاست خارجی در دانش های وجود می خوره مثلا معروفه میگن نظریه های امنیتی وجود 99 درصد ارزش برای آمریکا چه چند درصدم شابه دیگه نظریه پرداز بودن که تمام اناسر نظریه باشه نظریه پردازی میکنن این نظریه‌ها ها جمع میشه رو هم اون رس تصمیمگی ها میتونن بر اساس این نظریه‌ها ها بهترین مودل رو انجام ما باید درها نظریه در قوضه و مودل و ساختار در قوضه اوکرامی در حوزه قوضی سربست قوضی قدرت کارگزار، در راقبالی نرم میاد. اوزی استی ازت خدا. اوزی رسانه ازت آوستی ما. داشته باشیم تا بتوانیم گتایی نهالی زد. در بسیاری دنیا ما نظریه ها حالا. محصولاتی میشه شده محصولات با نگاه های تر در ازدان میشه شده. حالا مواجهی. سعی ما دوستان ما نگاه عادی رو بگیر بیا با آیات و آداب دستان چوییم مخالفتی نداریم. نمی‌دونم بگم در حال نظر زدن این زمین ببخشید که کارتون درد آوردن می گونم که بنویسه باشین تا حدی باقی افواد مساله رو خدمتتون بوازون در جلسه اول ما جمع بندی در جلسه اول به کلیات درختون عنوان بدید که نظام زویی یعنی فلسفه نظام سلسله بی جلسه های ثانیاثی به لوا از جایگاه و پیشینه و ویژگی ا ویجیال تا جنبستون سعی کردیم مبحثا لری عنوان خروجی نظام سیاسی پروژه کلی یعنی خیلی ابعاد و شاخه زیاد داره میرو خدمتتون ارائه بدیم و این مقداریم بر اساس نظام سازی اشاره هایی داشتیم تا بگم این تلاش ها این در واقع تلاش ها و خدماتی که همه دوستان در واسه مدرسه و آر آره برخوره این وقتی که ما گذاشتیم در مزیر رخواه شدن بیشتر در حال سیاسی طرف نظام در تحقق تمدن اسلامی و در تحقیق نزدیک شدن به ظهور آقای منوزمان انشاءالله باشد اون را این واقعا احبارمون را قالس کنیم ما همیشه بگن که این تلاشت های ما در دعای داریم که در واقع الله اینا نارده با الیشا في دولة شریمه تو به الاسلام با احله به النقاق با من الدعات الى طاعته و القادة الى سبیده و با کراما تا دنیا با نوفر این فرق النظام و فرق این دعای در این في دولت کریمه تما دعات الى الغادره را سعی کنیم تا ترجمه الله <تصفيق>